وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَعَجِنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين والي وصحبه أجمعين أما بعد اسلام و ايمان از اون بحث ایمان به خداوند و بعد از اون بحث یکتا بودن خداوند بود در افعالش و أفعال ما خداون را در افعال شیفت قرار بودیم اون را فقط به عنوان خالق و به عنوان مدبر و رزاق بشمریم و در اعمالمون در دعای مسئلت و دعای عبادت فقط خدا را صدا بزنی فریاد بزنی و سر به سجده خداون بذاریم و فقط از او اطاعت بکنیم بله اینها انواع توحید بودن که بعضی ها به عبارت دیگر از توحید عملی یاد میکنن به عنوان توحید عبادت یا توحید الوهیت و از قسمت توحید علمی را یاد میکنن به عنوان توحید ربوبیت یا توحید معرفت و اثبات توحید نوع دومی را به عنوان توحید قصد و طلب ما نمیخوام در تفاصیل این قضیه بریم این مباحث برمیگرده، مباحث مفصلی هست در بحث اتقال ما فقط اون مسائل جزئی را میگیم، مسائل مفسر را انشالها برای سالهای بعد. اما بحث امروزمون، بحث الانمون که ما داریم، بحث ایمان ما به خداوند چه سمراتی داره. چه پاداشی داره چه نتیجه ای داره حال اگر ما خداوند را یک تا قرار دادیم در عبادتمون در اون دعای مسألتمون دعای عبادتمون چه پاداشی خواهیم داشت چه ثمره ای داره چه گیرمون میاد انسان معمولا وقتی که یک کاری انجام میده، از وقت خودش هزینه میکنه برای یک کاری خب بالاخره طمع داره که یه چیزی گیرش بیاد منتظر اینه که یه چیزی بهش برسه به شخصی پیدا بکنه اگر من خدا را صدا زدم اگر من از خدا طلبیدم اگر من سر به سجده خدا نهادم گذاشتم چه گیرم میاد چه پاداشی دارم بله پاداشی که خداوند گذاشته برای انسان در ازای طاعت و عبادتش پاداش هم دنیوی داریم هم اخروی داریم پاداش دنیوی چیه خداوند در قرآن میفرماید میگوید الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون الذين اونهایی که ایمان آوردن به خداوند یکتا باور کردن که خداوند خالق, خالق, خالق یکتاست و قبول کردن که خداوند فقط معبود به حقه اونها خداوند بهشون امنیت میده چه امن و امانی بهشون میده امن و امان در قلبشون و در, زندگی در زندگیشون اولئک لهم الامن احساس امنیت در قلب بالاترین نعمت که انسان داشته باشه نه اینکه با استرس زندگی بکنه نه اینکه با دغدغه زندگی بکنه با وسوسه زندگی بکنه خیر خداوند او را حفظ میکنه او را ستر میکنه در قلبش آرامش قرار میده تو قرار میده قلبش مطمئنه خدای بزرگی داره که فریاد رسشه خدایی عظیمی داره که صدای او را میشنود خدایی داره که دعاش رو استجابت میکنه این خیلی حرف مهمیه که انسان خودش در امان بدونه در امنیت بدونه خداوند او را حفظ میکنه در قلبش که هیچ وقت مثلا بالفرض احساس کمبود نکنه و از طرف دیگر در اونالا، ح... چون هر دوتا مسئله که ما داریم میزنیم بحث دنیامون یک مسئله مسئله معنوی هست، امنیت معنوی، یک امنیت داریم، امنیت مادی یعنی خداوند سبب میشه یک کرامتی به بده که خداوند ما را حفظ بکنه در بیرون از شر و مکر دیگران ما را نجات بده همونطور که ابراهیم علیه السلام وقتی که بهش مک کردن او را در آتش انداختن آتش خدا، آتش چی شد؟ آتش می سوزنه. ولی آیا ابراهیم را سوزان؟ خیر این امنیتی که خدا به ابراهیم داد در ازای چی بود؟ در ازای ایمان و اعتقادی که به خدا داشت این امنیته در ازای توشید در ازای خداوند این اینچین امنیتی بهش داد یعنی ای مؤمن اگر تو ایمانت به خدا راسخ شد ایمانت به خدا قوی شد اگر شما در اعمال قلبیتون اعمال بدنیتون و گفتاریتون خدا را یکتا قرار دادید و خالصانه خدا را پرستید بدونید خداوند همه جا فریادرس شما هست همه جا به درد شما خواهد خورد این خیلی مسئله مهمیه که در قصه ابراهیم نهفته است پس امنیتی که خدا بهمون به میده اونهایی که دچار ظلم نمیشن که در تفسیرش میاد این ظلم صحابه میان میگن که یا رسول الله اینا یا لم یظلم نفسه کی از خودش که از ما ظلم نکرده باشه رسول الله صلی الله و به جواب اونها میدن که بل منظور از این آیه همونطور که لقمان به فرزندش گفتن این شرک لظلم العظیم این ظلم منظور شرک اکبره یعنی اونهایی که شرک به خدا نیوردن و خدا را یکتا قرار دادن و یکتا پرست شدن یعنی خدا باورشون به خداشناسی به جایی رسید که خدا را فقط یکتا قرار دادن در پرستششون اون اشخاص وقتی که دوری جستن از شرک پاداششون چیه؟ امنیت معنوی و مادی در دنیا همونطور که ما مثال زدیم گفتیم ابراهیم و دیگر پیامبران خدا نوح علیه السلام مگر خداوند او را نجات نداد به سر کشتی از اون قومش وقتی که خداوند خشم و غذب را گرفت بر قوم نوح چی شد؟ قوم نوح همه هلاک شدن کی نجاتی آف؟ نوح نجاتی پس این عاقبته، این سمراته، این پاداش ایمان یک شخص به خداوند وقتی که شخص خالصانه خدا را پرسیش، پرسید پاداشش اینه که خداوند او را نجات بده و به دادش برسه حالا ما سمرات ایمان زیاد داریم گفتیم این یک قسمت دنیاوی هست یک قسمتش هم داریم بحث اخروی هست بحث آخرته در آخرت خداوند انسان را بر جهنم حرام میکنه الا این که الله حق کسی ضایه کرده باشه اون مسئله دیگه هست بله اون کسی که خالصانه خدا را میپرسته پاداشش بهشته برخلاف مشرک اگر شرک بیاریم به خداوند پاداشمون چیه پاداشمون جهنم باد بسوزیم اگر شرک ورذیم دیگه جهنم بر ما این پاداش نیست این عقابه با این نکوهش خداوند این عذاب خداوند ما مستحق عقوبت خداوند میشیم پاداشی که یک مؤمن میابه در ازای ایمانش اعتقادش به خداوند در مقابل یک تا و و خداشناسیش پاداشی که خداوند در آخرت بهش میده بهشت خداونده اون زندگی ابدی هست اون خوشی ابدی هست که بالاتر از اون دیگه خوشی اینیست هرچنکه های خداوند فراوانه از اون چیزایی که خداوند برای انسان در اجزاء ایمانش و توحیدش و عبادتش خدا برایش گذاشته، از اون درختها و از اون میوهها و قصرها و رودخانه های مختلف که خداوند داده به شخص در بهش. بله رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: "إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله". اون کسی که ابتغای وجه خداوند. یعنی خالصانه چنان با باور قلبی و قطعی. لا الله الله میگه که که حاضر نیست خداش رو با کسی دیگه عوض بکنه با هوای نفسش یا با دیگران طاعت خدا را زیر پا نمیذاره حرف خدا رو جلو به چشمش قرار میده اون شخصی که ابتقای وجه خداوند یعنی خالصانه فقط برای خداوند اینی فقط خدا را میپرسه و فقط از خداوند اطاعت میکنه کسی که بنده حقیقی شد خداوند او را بر جهنم حرام میکنه چه پاداشی بالاتر از این که خداوند حرام بکنه هر که ما پاداش ها زیاد داریم من قال لا اله الا الله خالص من وجهی دخل الجنه کسی که ما احادیس با این الفاظ و این معنی زیاد داریم هر که علیه الصلاه و السلام کسی که کلمه لا اله الا الله را خالصانه بگه به خداوند یا افتقای وجه خداوند بگه وارد بهش میشه چون شخص احتمال داره حق دیگران را کرده باشه عذاب ببینه ولی که بهشت خدا بر اون شخص حرام نمیشه برخلاف اون شخصی که شرک میاره اون شخصی که شرک میاره هیچ وقت وارد بهشت خداوند نخواهد شد هیچ وقت ان الله لا یغفر ان یشرک به خداوند هیچ وقت شرک اکبر رو نمیبخشه و یتغفر ما دون ذلك لمن یشا دون شرک یعنی غیر از شرک اکبر رو خداوند برای کسی که بخواد میبخشه پس انسان باید بدونه چه شرک اکبریه چه شرک اصغر است که ان در درس های بعد شرحش هایم داد توضیحش هایم داد عقوبت شر خیلی سنگینه همون طور که پاداش توحید تو تا پاداش یکتاپرستی خیلی بالاست بهشت به خدابندی است بهشت به عبادی است که دیگه مرگی اونجا نیست همون طورم عقوبتش سخته که ما باید بدونیم که شرک که دیگه عقوبت نشیم و, ج... و از جهنم خداوند محروم نشیم از, ب... از بهشت خداوند محروم نشیم این خیلی مسئله مهمی است خب چرا خداوند این چنین پاداشی گذاشته چرا خداوند این چنین ثمره ای گذاشته انسان شاید به فکرش بیاد خب در ازای چی خداوند اینقدر پاداش گذاشته و اینقدر در خلاف اون عقوبت گذاشته چرا چون هدف از آفرینش عبادت بوده یعنی ماها خداوند این همه نعمت رو مسخر ما کرده این نعمت‌های فراوان از بدن از خورشید از درختان از میوه‌جات از حیوانات دیگر که از آن بخونیم و بنوشیم از آب‌های مختلف از نوشیدنی‌های مختلف خداوند این همه نعمت را داده برای چی که گزارش باشیم که او را بپرسیم با ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جن و انس را خلقت نکردیم. مگر برای پرسش ماها برای پرستش اینقدر شدیم نعمت ها را خداوند ب... به داده که که او را بپرستیم که سر به سجدش بذاریم نه که تنها این های نعمتها... نعمت های مادی که میبینیم اون نعمت های معنوی مگر خداوند برای نجات ما پیانبران را نفرستاد مگر کتابهای های آسمانی را نفرستاد چقدر خون ها ریخته شد برای اینکه صحابه جهاد بکنن و اسلام و ایمان را به هم برسونن مگر کم بود خیلی چقدر زحمت کشیدن تلاش کردن بله پس خداوند نعمتهای مادی و معنوی داده و بر سر ما گذاشته تا اینکه که بشیم، باشیم تا اینکه سر به سجده خداوند بذاریم و خداوند یک تا رو بپرستیم و رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر به زندگیش نگاه بکنیم این عبودیت و این پرستش و بندگی درش میبینیم رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که آیش دنبالش می‌گرده شب که کجا هست و کجا نیست در مسجد او رو می‌بینه که یک سر ایستاده داره نماز میخونه سر به تحجج گذاشه پاهش برام کرده رسول در پاسخ اوش چی میگوید وقتی که بهش می‌گه تو چرا این کارو میکنی خدا گناهانت بخشیده میگه افلا اكون عبدا شکور بنده این شاکر نباشه این شکر خداست ولا این شکرتم لازیدنکم اگر انسان سپاس گذار شد انسان های فراوان به انسان میده خب اگر انسانی عبادت نکنه سر به اطاعت و بندگی نه دیگه بنده نیست دیگه حق و عبودیت و, و خدا به جا نیورده خداوند اگر نعمت به همون داده، اگر گفته من خالقم، ازمون در ازای اون خواسته که سر به سجدش و عبادتش در بیاریم، سر به اطاعتش در بیاریم، اگر این کار را انجام ندیم، ما میشیم مشرک ما میشیم کافر. مگر ابلیس چرا کافر شد؟ مگر خدا را قبول نداش، حالا رب ما اغوایت نی، خدا را قبول داشت ولیکن که حاضر نشد از خدا فرم بشه، حاضر نشد سر به سجدی خداوند بشه. آبا و و کان من الكافرين. و وسکبار برزید. خداوند در ازای اون استکبارش عدم پذیرش و حکم خداوند او را جهنمی قرار داد و بهشت خودش را بر ابلیس حرام کرد پس انسان اگر خداوند چنین پاداشی بزرگی قرار داده و چنین عقوبتی به خاطر اینکه هدف از خلقتش این بوده هدف از آفرینشش این بوده به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانچه ما در حدیث معاذ داریم رسول الله صلی الله علیه و آله روزی معاذ را پوشش سر خود سوار الاغی سوار میکنه بعد از معاذ سوالاتی میگرسه سوال میپرسه یا معاذ اتدری ما حق الله علی العباد و اتدری ما حق العبید علی الله آیا حق بنده را بر خدا میدونی و حق خدا را بر بندگان حق خدا بر بندگان و حق بندگان را بر خدا آیا میدونی چیه معاذ گفت رسول الله قلت الله و رسوله اعلم الله و رسولش جناتر من نمیدونم باز میگه معاذ بن جبل میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به مسیرش ادامه دادن باز دوباره رسول پرسیدن تا اینکه سه بار میپرسه بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم در پاسخ به معاذ میگوید اما حق پروردگار اما حق پروردگار بر بندگان حق الله علیه العباد ان یعبده و لا یشرک حق خداوند بر بندگان اینی که فقط خداوند یکتا را بپرستند و شرکی به خدا نیارن ان و لا یشرکو به هیچ نوع شرکی نیارن نه شرک اکبر نه شرک اصغر یعنی خداوند ماها را خلقت کرده که هیچ نوع شرکی به خدا نیاریم الله چرا اینجا ما گفتیم شرک اصغر شرک اکبر بس خیلی مفصله بحث لغوی هست ان و لا یشرکو به شیئا و لا اینجا ما در لغت عرب داریم هر وقت شرک هر وقت یک چیزی بیاد در ادات نفیا یا نه بیاد خدا یک چیزی نهی بکنه بگید که فلان کار را انجام ندید خصوصا فعلی که بعد از اون بیاد نکره باشه چی میشه؟ اون نکره دلالت بر عموم میده یعنی همه ی انواع شرک را در بر میگیره اینجا اگر کسی بندگی این خداوند ماها را خلقه کرده که بندگیش را به جا بیاریم نه دوچار که اکبر بشیم و نه دوچار شرک ازخر این از بندگیه یعنی اگر گفت, گفت خدا ما فلان چیز حرامه نبود انجام بدیم این کمال عبودیت این بندگی هست یعنی بندگی فقط این نیست که ما بگیم نماز میخونیم روزی میگیریم خیر بندگی اطاعت, اطاعت فرموداری از خداوند یعنی کاملا ما از خداوند اطاعت بکنیم این بندگی خداوند این حتی خداوند بر, بر, بر ماها نه اینکه ابواستگار بکنیم مثل ابلیس و اما حق بندگان که این پاداش بزرگ درش هست حق بندگان بر خداوند چیه چه بندگان ما هم حقی داریم بله حق خداوند بر خودش واجب کرده در ایزای توحیدش در ایزای یکتاپرستیش حق بزرگی خداوند بر خودش گذاشته خداوند خداوند پاداشی که گذاشته برای مؤمن در ایزای توحیدش چیه در ایزای توحیدش اینه که عذاب نده کسی که هیچ جور شرکی به خدا نیاره حق العباد علی الله حق بندگان ای معاذ بر خداوند چیه اللا يعذب من لا يشرك به شيئا عذاب نده کسی که شرکی به خدا نميورده هیچ نو شرکی یعنی کسی که خداوند را به عنوان معبودی یکتا و به شخص مطیع یکتا پذیرفته یعنی فقط از خدا اطاعت بکنه و فقط سرmessage خدا بذاره پاداش چیه الله يعذب یعنی خداوند عذابش نده هیچ نو عذابی نبینه اما اگر این قضیه یعنی سبب شد که شخص شرک اکبر مرتکب بشه خداوند عذابش میده که هیچ وقت نیاز نمیاد همون طور که ما داشتیم بهشت خداوند برش حرام میشه کسی که شرک به خداوند میاره من عمل عملن اشرک معي غیری غیر و شرک هم خودش رو شرکش رها میکنه و او را خالد مخلد در جهنم میکنه ان الله لا یغفر ان یشرک به هیچ وقت خداوند شرک اکبر رو نمیبخشه یعنی باید تا ابد تا وقتی که جون داره در به خداوند با بسوزه اما شخصی که دوچار گناهی میشه اگر شخصی معصیتی انجام داد شرک در طاعت انجام داد شرک از را انجام داد اون شخص باید به اندازه گناه خودش عذاب ببینه سپس وارد بهش بشه همونطور که ما قبلا بیان کردیم دا گفتیم چون این حق بندگی خودش را به جانای برده از بندگی اینه که کاملا متیاب فرمومدار خدا باشه یعنی کاملا از خدا فرمومدار داشته باشه و اطاعت بکنه و سر به سجدش بذاره و فقط از او به و در تمامی اعمالش و کردارش فقط فرمومدار از خداوند باشه بله این عبودیت و بندگی هست و این پاداش بزرگی هست که در ازای این بندگی خداوند گذاشته برای, برای ما مؤمنین بله در دنیا خداوند به همون امنیت میده امنیت معنوی و مادی و در آخرت هم امنیت ابدی برامو میده این که عذابی نبینیم اگر واقعا خالصانه و خدا را فهمیدیم و, خدا و, و یک تا پرست کامل شدیم اما اگر این یک تا ناقص شد اونجا هست اگر خدشدار شد اونجا هست که شاید به اندازه گناه عذاب ببینیم ولی در غیر این صورت اگر این یک تا زیر پا گذاشتیم، شریکی برای خدا من قرار دادیم، اونجا هست که جهنم خدا, جهنم خدا من بر ما واجد میشه و بهشت خدا بر ما حرام میشه. بهشت خدا پس نباید بر خودمو حرام بکنیم و باید بدونیم که توفید چیه، شرک چیه تا این در شرک اکبر نیفتیم تا بهشت خدا بر ما حرام نشه. و آخر دعوان الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ علی محمد و علی محمد